شور جميعا و السلام ععلیکم ورحم الله و برکاته. اینجا خراسان است دا خواصاند بس خواصانددن گپرم است شنونده های رادیو سای خلافت به بخش دری برنامه ما خوش آمدید به حال توجه شما را جلب می داریم به داشته های امروزی. وارفعوا التكبير دعما واهدفوا أحلى نشيء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانان سبح بارئ الله بشبر صاليد هو حمد زان الله عز هي معبودي بجز الله كيقطع كي استو شريكه ندارت وجود ندار فادشاهیو حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز است. الهی من خیر آنتی در این شبست و خیر آنتی بعد از آن است رازدو می تلبا و اش شر آنتی که در این شب و ما بعد آن وجود دارک بتو پنامی بر الهی من, بار من از تمبدی و بدیهای پیری به توپنامی بار الها من از عذاب و عذاب قبر به توپنامی رادیو راژیو صدای رادیو صدای برائت از همه کفار مرتدین و روافظ نود سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و هجرت به هبشه وقت که آزار و اذیت کفار نسبت به مسلمانان روز به روز زیاد شد ایده از آنان تصمیم گرفتند به سرزمین دیگر مهاجرت نمایند تا اینکه راحت تر و بهتر بتوانند الله جل جلاله را عبادت کنند و همچنین دیگران را به اسلام دعوت نمایند و جای مناسب را برای اسلام پیدا کنند از جمله کسانی که تصمیم به هجرت گرفتند عثمان بن عفان و همسرش رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم جعفر بن ابیطالب طالب عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام و غیره بودند که تعدادشان به اشتاد و نفر می رسید پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت که از تصمیم آنان مبنی بر هجرت آگاه شد برای مهاجرت سرزمین حبشه را معرفی کرد چرا که پادشاه حبشه فرد بنام نجاشی بود که عادل و دادگر بود و سرزمین حبشن نیز سرزمین بود که در آن صداقت و درستی مشهور بود و پیانبر صلی الله علیه وسلم امیدوار بود که الله جل جلالهو در کار آنان پرج و کند آنان از تاریکی و سکوت شب استفاده نموده و مهاجرت خودشان را شروع نمودند و از طریق دریا خود را به حبشه رساندند هنگام که کفار قریش از این ماجرا اطلاع یافتند دو تن از سرشناسان قریش به نامهای بن عاص و عمار بن ولید که هنوز مسلمان نشده بودند را برای بازگرداندن آنان نزد نجاشی فرستادند آنان نزد نجاشی رفتند و هدایای بسیار هنگفته نیز همراه خودشان بردند و می شرایط را برای رنجانیدن نجاشی از مسلمانان فراهم نمایند. نمایندگان اینچنین اینچونین وانمود کردند که اینان اده جوان هستند که از دین آبا و اجداد خودشان دست کشیدند. و به دین تازهی رو آوردند که نه ما آن را میشناسیم و نه شما همکنون اشراف و بزرگان و خیش اینان ما را فرستادند تا آنان را برگردانیم زیرا آنان بهتر میدانند که چگونه باید با اینها برخورد نمایند کسانی که نزد نجاشی بودند گفتند این دو نفر راست میگویند اما نجاشی دریافت که باید این مسئله را تحقیق و بررسی نماید بنابراین به دنبال مهاجران فرستاد و بنا را بر این گذاشتند که چیز جسد و راستی نگویند نجاشی گفت این دین جدیدی که بخاطر آن با قوم و قبیله خود دچار اختلاف و تفرقه شده اید، چی دین است و چرا شما دینی که ما بر آن هستیم یا به یکی از ادیان شناخته شده در نیامده اید؟ جعفر بن ابی طالب که سخنگوی مسلمانان بود گفت: ای پادشاه، ما قومی بودیم که بط می پرستیدیم گوشت مردار می خوردیم و به انواع و اقسام فحشا و کارهای ناروا آلوده بودیم و قط رحم می کردیم و نیرومندان بر ضعیفان ستم می کردند اوضاع و احوال بر همین منوال بود که الله جل جلاله از میان ما پیامبر مبعوث کرد که او را به خوبی میشناسیم و از او چیز جز صداقت و راستی ندیده ایم او ما را به توحید و الله پرستی فرا خواند تا اینکه که هرچی پدران و نیاکان ما از چوب و سنگ می پرستیدند رها سازیم او به ما دستور داد راستگو باشیم امانت دار باشیم خونریزی نکنیم از فحشا و دروغ و تحمد و افترا دوری ورزیم و ما نیز به او ایمان آوردیم و او و دین او را یاری دادیم و غیره سخنان را ادامه داد این بود که قوم و قبیله ما در صدد آزار و اذیت ما بر آمدند و بر ما تجاوز دمودند و خواستند بار دیگر ما را بدین آبا و اجداد ما درآورند و این امر بر ما گران آمد که دست از الله پرستی برداریم بنابراین و سرزمین شما که سرزمین امن است مهاجرت کردیم و شما را بر دیگران ترجیح دادیم نجاشی گفت آیا ممکن است از آن آیاتی که پیامبر شما آورده است بر من بخوانی جعفر گفت بله و شروع به خواندن آیات از سوره مریم نمود و نجاشی با شنیدن آیات به گریه افتاد. اما هنوز دو فرستاده قریش دست بردار نبودند و خواستند به هر طریقه که شده است نظر نجاشی را در مورد مسلمانان تبدیل کنند. آنان نزد نجاشی رفتند و گفتند اخیری اینان در مورد عیسی علیه السلام عقیده نادرست است پس نجاشی جعفر را فرا خواند و از او در ارتباط با عیسی علیه السلام سؤال نمود جعفر عقیده خود را در ارتباط با عیسی علیه السلام طبق آیات قرآنی بیان نمود آنگاه نجاشی گفت به الله قسم عقیده شما و ما در این ارتباط هیچ فرقی ندارد پس فرستادگان قریش ناامید شدند و با هدایای خیش به با مکه بازگشتند مسلمانان از آن روز به طور آزادانه در حبشه به تبلیغ دین اسلام پرداختند نماندگان گرامی توجه نماید به اوقات نماز فردا پنجشنبه به رمضان المبارک فجر صادق سی و نه دقیقه اشراق چار و سی و چار دقیقه ظهر یازده و چل و نه دقیقه عصر سی و سی و شش دقیقه مغرب هفت و چار دقیقه ایشا اشت و سی دقیقه ما هرگز مرتدین و منافقین را نمی بخشیم هرگز کسانی را نمی بخشیم که در مقابل دالر اینا آمریکایی امریکایی ایمانشان را فروختند برای دشمنان هرگز این اجازه را نمی دهیم که آنچی را که قایم کرده ایم دهند یا آنچی را که بنا کرده منهدم کنند از ما بشنوید آیا گمان می برید ما از بین می رویم؟ آیا خیال میکنید که ما نابود میشویم؟ نه والله تا قیام قیامت ماندگار خواهیم بود. ماندگار خواهیم بود زیرا که به الله واحد خزو نموده ایم در حالی که دشمنان ما به آمریکا خزنموده اند. ماندگار خواهیم بود چون ما به خاطر کدام هدف دنیاوی نیامده ایم؟ بلکه تنها برای اعلای کلمت الله بر آمدیم ماندگار خواهیم بود زیرا که احوال ما با جنگ شدید ترو با ترک گسترش یابد و عزت مخصوصی الله و رسولش و مؤمنان است لحظات خبری سرای خلافت گزارش های جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلغات دروغین رسانه های غربی پرده بر دارد لحظات خبری سرای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنمندگان مسلمان و امومین رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید با امید که روزهای ماه مبارک رمزان را به خوبی سیپری نمویید امروز چار شنبه هفته همی سال 1437 تجری قمری توجه شما را جلب با باخرین تحولات و پیشرفی های دولت اسلامی نخوص سرختی چند خبر صحیح صحیح. حلاکت 42 نیروی دشمن در نزدیک شهر تدمر پانزده نیروی کردی در مینبیج کشته شدند سنیلو سواری. سنیلو سواری. انهدام چندین واسطه نظامی روافیز در بیجی و از درگری های فلوجه هم شما را با خبر می سازیم. با ما باشید قالين الصوارم نشيد الوبات ودرب از ولایت خراسان گزارش میکنیم شنوندگان گرامی توجه نماید به یک خبر از ولایت خراسان در منطقه وزیر خوگیانو یک قماندان اربکی ها کشته شد تقریبا پانزده روز قبل در منطقه وزیر خوگیانو از طرف مجاهدین خلافت اسلامی یک قماندان اربکی ها که سرجنگی نام داشت روانه جهنم گردید سرجنگی آن قماندان ظالمه بود که تمام مردم محل از ظلم او تنگ آمده بودند اما مجاهدین خلافت توسط یک مأمینه جابجا شده سر را با پنج تن از افرادش روانه جهنم نمودند این که چی علت بود که این خبر قبلا نشر نشده بود به خاطر تامین امنیت خود مجاهدین بود مگر ملیشه های آی از این موقع استفاده کرده و این عملیات را به عهده خود گرفته بودند این در حال است که چندین عملیات دیگری را که مجاهدین خلافت در ساحات کابل جلال آباد انجام داده بودند، امارت نامنهاد به بسیار چشم سفیدی به عهده خود گرفته بودند. این بود خبر از ولایت خراسان تشکر از توجهتان. لحظات خبری صدای خلافت. گزارشات از شام میرساند که نیروهای دولت اسلامی یک حمله گستردهی را بر مواقع نیروهای روسی که در کنار ارتش سوریه وشی نظامیان شیعه جنگند در ده کیلومتری شهر تدمور انجام دادند. خبر میگوید که در گیری های شدید در داخل ساختمان های منطقه جریان دارد. حمله مسکر با انجام یک عملیات استشهادی شروع شد که مقر نیروهای های دشمن را نشانه گرفت. سپس نبرت های شدید میان نیروه های دشمن و مجاهدین در گرفت. استشادی دومی بر ساختمان اصلی که در آن فرماندگان ارتش سوریه وجود داشتند انجام گرفت. یک منبع به خبرگزاری اما گفته است که در این درگیریها دست کم چلو دو تن از نیروهای های مشترک دشمن کشته و شماری نیز زخم برداشتند. این حمله پس از آن رخ می که چند قبل نیروهای های دولت اسلامی بر پنج منطقه در این یافته بودند. دیوان زکات و صدقات در ولایت رقه مبلغ مالی را که به 610000 دلار میرسد میانی خانواده های مستحق از ابتدای رمزان جاری تا کنون توزیع کرده است یک منبع به خبرگزاری اما گفت که کار دیوان بر اساس آمار مالی برای توضیح 830 هزار دولر میانی 17 هزار خانواده محتاج تایی ماه مبارک رمزان ادامه دارد. گزارش گفته است که به طور یا استقاق هر خانواده به 50 دلار میرسد. در همین آل خبری دیگر از این شهر میرساند که نیروهای دولت اسلامی بر مقر و میدان سفیان در سی رای رسافه در جنوب طبقه تسلود یافتند. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی تجمعی نیروهای کردی را در جنوب شرقی منبیج در هم کوبید. خبر می که در اثر این حمله بیش از 15 کردی مالحید گشته و زخمی شدند. خبر ها از ولایت سلاحادین هاکیست که کی چندین انفجار نیروهای عراقی را در نزدیک پول سمده در شمال بیجی هدف قرار داد. خبر میگوید که در این انفجارات دو بلدوزر یک اراده مطر حامل افراد و چندین وسیله دیگر نظامی از بین رفته است. این در حال است که دو تانک نوی آبرامز که فخر آمریکا به ایساب می آید، با واسطه موشک های هدایت شونده در شمال غربی همیشه از بین رفته است. آژانس خبرگزاری اما گزارش داده است که درگیری‌ها بار دیگر در فلوجه شدت یافته است. در تازه‌ترین موارد یک قافله نیروهای عراقی در محله اندلس در وسط شهر فلوجه تحت محاصره مجاهدین دولت اسلامی درآمد. خبر می‌افزاید که در درگیری که در این محل رخ داد تن از اساق عراق کشته شدند که در بینشان یک افسر بر رتبه دگروال نیز شامل است. در همین حال یک خبری دیگر میگوید که 23 اسکری روافیس در سر درگیریها در شمال فلوجه کشته شدند. این در حال است که یک ارادت تانک زیره دار با تمام سرنشینانش در داخل شهر فلوجه از این رفته است. در یک خبری دیگر آمده است که یک فرماندی گروه های نظامی شیعه برام سالیب خاتی در جنگ های فلوجه به حلاکت رسیده است، این بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از توجه تا جهان سپاس و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لحظات خلافات خانه امن مسلمانان است خلافت محافظ اسلام است خلافت خار چشم برای فاسق، مشرک، مرتد، منافق و همه کفار است پس ای کسی که ادعای مسلمان بودن را داری ای کسی که ادعای اسلام و جهاد را داری بشیار باش، مفکر باش، مدبر باش مبادا فریب ملههایی را بخوری که مانند خر کتاب ها را به پشت انداختند مبادا فریب ملههای را بخوری که مشاورین حکام تواقیتند مبادا فریب ملاهایی را بخوری که زیر چتر تاووت به نام احزاب اسلامی مردم را به گمراهی دعوت می دهند مردم را به مذهب سیکولار دعوت می دهند مردم را به بهانه های مختلف از جهاد منع می کنند پس فکر کن ای کسی که از این ملله های فروش فتوا میگیری گیری را که آنها مجاهدند یا سیکولار پس عجله کن مبادا با مرگ جاهلیت ببینی مبادا از این نعمت که خلافت است محروم شوی بیا در میدانهای گرم نبرد و کار بر علیه همه کفار و مرتدین بجنگ ودين الله را سرزمين الله حاكم وله الأداب تميزه يرفع بالخلق سحاب يأمر بالمعروف وينهى عن منكر فعل انت عن منكر فعل زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمة خفاقة والله اكبر في السماء تتعالى والله اكبر في السماء تتعالى والله اكبر في السماء تتعالى مجدنا تاريخنا وسلامنا بإسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقات ترنو السلام فتوجت أبطالا زمن جميل كان فيه به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمة خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى سيظل للتاريخ اسم حافل سيظل فخرا يعتلي الاجيال سنظل خيرا الناس في كل فلنا العقيدة تبعث الآمال ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا نحو التألق يمنة وشمالا تالا كان عزائم امتي خفاقه والله اكبر في السما تتعالى والله اكبر في السما تتعالى والله اكبر في السما تتعالى في إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الغراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمة خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر الله اكبر. ايوها ايوها من ای تاریخ ما برگشتیم با جهاد و عزت برگشتیم با احکام قرآن و سنتو با نهج سلف صالحین برگشتیم میخوایم دفاترتر را در عصر فتنه و فساد با عدالتیالهی ممنوعه زیم پس ای تاریخ از عصر فساد محزون مباش از طغیان تاغیان و از حکومت های ظالمان محزون مباش محزون مباش ما, ما برگشتیم و انشالله هر پارچه ورقت را با خون های متحر خود رنگین می سازیم. برگشتیم دات الاسلام صول وتحرير مله الكفر وجمع العزبهي ما من فلول يا شما مين خايفك ردي صداه نه هرگز نه ما آرام نشینی تا که حقایق را بگوش امتی مظلوم و مسلمان ما آسان توبه کن خب کن قبل از اینکه قدرت پیدا کنیم اینو نوکران کفار به الله قسم وعده عده پیامبر ما صلی الله علیه و سلم حق که و غرب زمین ازان امتش می باشاد مسلم کتاب الفتن واشراط الساعة باب حلاق هذه امتي بعدهم ببعد حديث من جزاره یکسد چلاش سوبان قال قال رسول الله صلو الله عليه وسلم. سلم الله اللہ زوا لیالارض فرعیتو ما شارقها وما غاربها و این امتي سيبلغ ملكها معزوية لمنها الصوبان رضي الله عنه رواية است كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرموت يقين انك الله جل جلاله براي من جمع كالزمين ده فزديدا شرقه غرب عن ده ويقين انك باشاه من مرس التعانجاي الزمين كبراي جمع الله كخلافات اسلامية فخشدانية است ولو سلام. <تصفيق> آیا رزخ روزی ما مرد زندگی ما به اختیار الله از وجل نیست؟ چرا هجرت نمی کنیم؟ <تصفيق> ای علمای دلسوز امت، شما بودید که با دعوتتان تان و مردم ذهنیت اخیده درست و را دادیست، حالا که خلافت چرا شما ضرورت دارد چرا وصایای شیطان مانع هجرت شما میشود آیا بیعت باخلافت با شما ضروری نیست آیا ما شما را خبر کرده فکر کنید فکر کنید عط من قيد وخوط وقعتا شاب منها هطل قبل الأكبار أحرق الأحساد شويا في النغار منظرا لم يرتسم في منظري بسوية بسو نور, نور رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج لي الذين آمنوا لِيُخرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور <رس> <رس> رسولی بسوی شما فرستاده که آیات روشنی الله را بر شما تلاوت میکند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور خارج سازد یا دولت الاسلام نورت <مزن> الدنار السماك بوااف این برنامه را شنبه ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید من عطره <تصفيق> مردانی که تاریخ اسلام را زنده کردند امت اسلام امتی است که قهرمانان فراوانی دارد امتی است که با خون زنده است امتی جهاد و استشهاد است یکی از قهرمانان امت اسلام که تاریخ را در زمان ما با خون خود نوشت ابو فاروق حسینی برادری از اهل فلوجه از اولین مجاهدین عراق و همرزم شهید عمر حدید رحمه الله در فلوجه در بمباران صلیبی ها یک دست خود را از دست داد سپس الله متعال او را به زندان دوچار کرد و حکم شش سال به او داده شد که در زندان با دوش قرار داشت اما هنگام فتح موصل الله او را آزاد کرد و به سرعت به بس صفوف برادران مجاهدش در فلوجه بازگشت و مشغول جهاد بود که هواپیماهای رافیزی بمبی را پرتاب کرد اما باز هم الله اورا نجات داد اما یکی از چشمهایش را از شدت انفجار از دست داد اول فاروق می گوید بعد از اینکه برادری تنیم عملیات استشهادی رفت من هم شوقم برای این عملیات افضایش یافت تا اینکه اسمش را در لیست عملیات استشهادی نوشت هنگامی که الله حافیزی میکرد. با دخترکش آخرین نفر ویدانمود دخترک به پدرش گفت بابا جان ما را رها نکن اما ابو الفاروق به شدت مشتاقی دیداری پروردگاری خود بود وقتی فامیلش آمد و گفت ما را با چی کسی واگزار میکنی؟ گفت به الله واحد و احد فامیلش هم گفت الله بهتر است حرکت کن ابو الفاروق میگوید هنگامی که حرکت کردم صدای اسب شنیدم و الله شاهد است اسبی هم آنجا وجود نداشت وقتی به دشمن رسید موتر حاملش را انفجار داد اما تقدیر الله این بود که باز هم ابو الفارق زنده بماند و موج انفجار او را دور انداخت و بهوش شد هنگامی که هوش آمد در بیمارستان بود و فقط چند زخم برداشته بود و بار دیگر تصمیم به عملیات استشادی گرفت و این بار با یک برادر دیگر استشادی به عملیات رفتند الله هر دوی آنان را قبول فرماید شنونده رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشراتی رادیو صدای خلافت روی همین موج به زبان پشتو ادامه میابد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.